افسونه افسانه به نام خدا سلام هر افسانه سندیس از هویت و فرهنگی ملت هویتی که نشان از آداب و رسوم و سنن مردم داره افسانه های ایرانی هم همگی برگرفته از فرهنگی ایرانی که با باورها و اعتقادات بومی و محلی اقوام ایرانی گره خورده افسانه پرنیانی است بافته شده با تاری از عشق و پودی از زندگی در این برنامه میخواییم یکی از افسانه‌های کشور عزیزمون ایران رو براتون روایت کنیم افسانه‌ای به نام زرگیسو که از کتاب افسانه‌های ایرانی نوشته محمد قاسمزاده اقتباس شده امیدواریم از شنیدن این افسانه لذت ببریم در زمانهایی خیلی دور در کشور عزیزمون ایران پادشاه زندگی می کرد که از مال دنیا هیچی کم نداشت آوازی ثروت و دارایی این پادشاه در سراسر دنیا پیچیده بود و همه اونو به عنوان خوشبختترین پادشاه روی زمین می شناختن. نه فقط پادشاه که مردم عادی اون سرزمینم هم همگی زندگی خوبی داشتن و در رفاه و آرامش زندگی می کردن. اما این همه ماجرا نبود چون پادشاه هم مثل همه آدم های روی زمین مشکلات خودشو داشت که نمی تونست دربارشون با کسی صحبت کنه. ولی پادشاه وزیر وفاداری هم داشت که همه جوره مراقب پادشاه بود و اجازه نمیداد که پادشاه دلتنگ بشه. یه روز که وزیر متوجه نگرانی پادشاه شده بود پیش پادشاه رفت تا درباره علت دلتنگیش با او صحبت کنه. قبل یالم باور کنید من نگران خودتونم. نمیتونم ببینم شما قمگین و افسرده یه گوشه نشستید و به یه نقطه خیره شدید استدام میکنم منو محرم خودتون بدونید و بهم به بگید چی تو دلتون میگذره. چه مشکلی براتون پیش اومده که از خواب و خوراک افتادید و چند روزه که حتی یه لبخند هم نزدید گفتن خیلی حرفا به همین سادگی نیست میدونم سربرم میدونم مخصوصا برای پادشاه عادل دادگستری مثل شما که در تمام عمر سعی کردید خنده و شادی و سلامتی رو به مردم سرزمینتون بدید با این حال صبر و تحمل و توانایی شما هم یه حد و اندازه مشخصی داره نباید این همه به خودتون فشار بیارید و در خلوت خصه بخورید منو محرم خودتون بدونید و با هم دردلل کنید من پادشاه خوشبختی هم که وزیر وفاداری مثل تو دارم با این حال گفتن دردی که رو دلم سنگینی میکنه برام ساده نیست همه ما تو دلامون یه درد داریم هیچ کس تو این دنیای به این بزرگی نمیتونه ادعا کنه خوشبخته و هیچ قمی نداره اما باور کنید وقتی با یه نفر درد دیل کنیم بار اون غم سبکتر میشه من سراپا گوشم سربرم. به من بگید چی آزارتون میده و خواب و خوراک و خنده رو ازتون گرفته درد من چیزی نیست که از نگاه کسی پنهان مونده باشه وزیر اما شاید این همه زرق و برق و برج و بارو و قصر آین کاری باعث شده که هیچ وقت به عمق اون درد بینه برم. چه دردی سر من سال هاست که پاچاه این سرزمینم در تمام این سال ها با مردمم مثل یه پدر رفتار کردم همین طور سربرم. در تمام این سالها امید داشتم که خداوند به من فرزندی عنایت کنه تا وقتی پیر شدم بتونم با خیالی آسوده این تاج و تخت رو بهش واگذار کنم اما میبینی که زندگی من آفتاب لب پوم شده و هیچ وارثی ندارم تا پیش از مرگم اون روی این تخت بشونم و آسود خاطر از دنیا برم خداوند به شما طول عمر با عزت انایت کنه اما حق با شماست، این تاج و تخت و سلطنت انقدر باش و که که من نه هیچ کس دیگه فکر نمی کردیم که نداشتن فرزند تا این اندازه بتونه شما رو ناراحت کنه درد من دردیه که فقط با دستان توانمند خداوند برطرف میشه نه با کشی به کشورهای دیگه و زور بازو و مال من آلا. فقط این لطف خداست که میتونه شامل حالم بشه و گره از کارم باز کنه شما قلب بزرگی دارید سربرم. اینو همه احالی این سرزمین میدونن از پدرم شنیدم که خداوند به قلبهای بزرگ و پاک عنایت خاصی داره شک ندارم که به شما هم نگاه میکنه و این غم بزرگو و از دلتون بر میداره. من عمر زیادی از خدا گرفتم دلم میخواد تا چشمام میبینه و دستام کار میکنه و پاهم رمقی برای رفتن دارن بچم ببینم و اونو بغل کنم شک ندارم که این اتفاق میفته خداوند صبوره و به وقتش حاجت همه حاجتمندان مندانو میده وزیر و پادشاه ساعت با هم حرف زدن و وزیر سعی کرد به پادشاه آرامش بده پادشاه که حسابی ناامید شده بود همچنان با وزیر درد دل میکرد و از قبل نداشتن فرزند میگفت اونا در حال حرف زدن بودند که مرد خردمندی وارد دربار شد و درخواست کرد که پادشاهو ببینه پادشاه هم درخواست اونو پذیرفت و مرد خرازمند به دیدن پادشاه رفت. خب مرد خرازمند اصرار کردی منو ببینی که اینجوری سکوت کنی و به در و دیوار قصر خیره بشی؟ از زرق و برق این قصر در حیرت اَمن. مرد خرازمند مثل تو چطور میتونه مبهوت زرق و برق اینجا بشه؟ دارم اندیشه میکنم که چطور این همه زیبایی نتونست کامو و قصه رو از یادتون ببره از کدوم قم و قصه حرف میزنی مرد؟ همون قصه ای که خواب و خوراک و ازتون گرفته و خنده رو از یادتون برده واضح حرف زن من میدونم تو دلتون چی میگذره سربرم میدونم از چه مشکلی رنج میبرین و چه آرزوی در دل دارین خب بگو ببینم من چه آرزوی دارم آرزوتون اینه که خداوند به شما پسری انایت کنه که بتونه بعد از شما وارث این تاج و تخت بشه و زمام امور این رو در دست بگیره درسته این همه اون چیزیه که من از خدا میخوام اما جز قدرت لایزال خودش کسی نمیتونه این آرزوی منو برابرده کنه فرض کنین من هم به لطف خدا الان به دربار شما آمد منظور چیه؟ من دیشب خواب عجیبی دیدم سرورم خواب دیدم در دربارتون هستم و شما هم دارین برای من درد در میکنین درست مثل همین حالا که مقابل هم نشستیم. خب بعد هم شما از آرزوهاتون میگفتیم و من با تمام وجود رو میشنیدم نیمه شب از خواب بیدار شدم و به شما فکر کردم همون موقع جلوی در پنه کردم و از خداوند خواستم آرزوی پادشاه عادل و دادگستری چون شما رو برآورده کنه به خدا گفتم وقتی این پادشاه خواسته های همه مردم سرزمینش رو اجابت میکنه شایسته این هست که آرزویش برآورده بشه خب همان موقع به قلبم الهام شد که خدمت شما برسم و این سیبو به شما هدیه کنم تا اونو بخارین یعنی یعنی با خوردن این سیب آرزوی من برآورده میشه بله سربرم من بعد از کلی آرزو به درگاه خداوند این سیبو از باغ خودم چیدم و برای شما آوردم شک ندارم که لطف خداوند شامل حالتون میشه و با خوردن این سیب بیماری از بدنتون خارج میشه و شما میتونین صاحب فرزند بشه یعنی یعنی من میتونم تو باور کنم آله سربرم البته در کنار اینها باید به خداوند و ارادی خداوند هم اعتماد کنم ممنونم خدایا نیازه همه یه نیازمندان میدم عدل و داد و بیش از پیش در این سرزمین گسترش میدم تو فقط آرزوی منو برآورده کن به <تصفيق> بفرمایید سرم این سیبو بگیریم و در دو شب هر بار نیمی از سیبو بخوریم تا به لطف خداوند به زودی سلامتیتون رو به دست مرد خردمند سیبو به پادشاه داد و از دربار رفت پادشاه سیبو نیم کرد و هر شب نیمی از اونو خورد یک سال بعد همسر پادشاه باردار شد و نه ماه بعد هم پسر پادشاه متولد شد پادشاه اسم پسرش رو فریدون گذاشت و به مناسبت تولد فریدون مهمانی بزرگی و در دربار برگزار کرد. بخورید بیا شامید شادی کنید بخورید های کوبی کنید. این مهمانی و سرور به میمنت تولد فریدونه به مناسبت تولد وارث این تاج و تخت بخورید بیا شامید وزیر به خوبی سر... از همه مهمان ها پذیرایی میشه یادتون راحت باشیم برای کسانی که نتونستن به دربار بیان و در منزل آشونستن چه فکری کرده دلم میخواد همه مردم این سرزمین امروز مهمان من باشم به اندازه کافی در مطبخ دربار غذا آماده شده س؟ به نگهبانان دستور دادم تا به منزل اهالی شهر برن و به هر خانواده به تعداد افراد خانواده قضا و میره بدن کوبه <تصفح> دلم میخواب تو این شب که من شادم همه مردم سرزمین هم شاد باشم و برای سلامتی من و فریدون دعا کنم بیشک همینطور سرورم این تاج و تخت به لطف خداوند و با تکیه بر قدرت فریدون ابدی و مندگاره وزیر فردا باید به شهر بری و مرد خیرتمند رو پیدا کنم. برای چی قربان؟ برای اینکه بهش قول داده بودم اگه با آرزوم برسم پاداش خوبی بهش بدم. میتونم بپرسم چه پاداشی براش در نظر گرفتی؟ اون باغ بزرگ که نهر بزرگی از وسطش رد میشه و همیشه خدا حاصل خیزه رو میخوام برای تشکر به عنوان هدیه به مرد خردمند بدم. به نظرم تولد فریدون اونقدر با ارزش هست که شما بخواید چنان باقی رو به مرد خرد بدید به به امید خدا از فردا بیفت دنبال اینکه اونو پیدا کنی و به دربار بیاری تا پاداشش رو از من بگیرم اطاعت میشه سردانم سالها گذشت و فریدون بزرگ و بزرگتر شد فریدون پسر باهوش و بازکاوتی بود و خیلی زود تونست تیراندازی و عصب و شکار حیواناتو یاد بگیره اون حالا جوان بالغ و زیبا و برومندی شده بود که پادشاه از دیدنش لذت می برد و بهش افتخار می کرد. پادشاه و همسرش حالا آرزوشون این بود که فریدون ازدواج کنه و تشکیل خانواده بده. اما فریدون زیر بار نرفت و هر بار به بحانه ازدواج و عقب انداخت. تا اینکه یه روز پادشاه به طور خیلی جدی ازش خواست که ازدواج کنه. من متوجه نگرانی شما هستم پدرم. باور کنین علاقهی به ازدواج ندارم. از تو تحجب می فریدون. همه پسرای هم سن و سال تو دلشون میخواد با دختر مورد علاقهشون ازدواج کنن و تشکیل خانواده بدن، صاحب فرزند بشن و به شوق بزرگ کردن فرزنداشون روزگار بگذرونن تا اونا رو به سرانجام برسونن. شما درست میگیم پدر ولی خودت میگین دختر مورد علاقه شون من به دختری علاقه ای ندارم. هیچ دختری تا حالا نتونسته دل منو به لرزون من, و من و عاشق خودش کنه. اگه کمی چشماتو باز کنی میبینی که دخترای زیادی دور و که خوب و خانواده آه. دارن. کافیه کمی بیشتر بهشون توجه کنی تا بتونی یکیشون رو انتخاب کنی علاقه هم بعد از این انتخاب به وجود میاد و دلت گرم میشه به همین عشق پدر باور کنی من نمیتونم به هیچ دختری علاقه من بشم من عاشق شکارم عاشق اسب سواریم عاشق تیر اندازیم. این خیلی خوبه که تو به این دست تفریحات علاقه داری و بدنتو ورزیده میکنی اما پسرم زندگی فقط همین نیست فقط تفریح نیست فقط چهکار نیست زندگی یعنی این که تو تشکیل خانواده بدی و صاحب زن و فرزند بشی و همین ها برای زندگی بهتر بهت قدرت و توانایی بدن به وقتش منم ازدواج میکنم پدر فقط لطفا به اجازه بدین خودم به یه دختر علاقمند بشم نه که به اجبار بار بادارم کنیم با کسی که دوستش ندارم ازدواج کنم باشه ولی فقط خدا کنه دیر نشه پسرم حواست به سنو سالتم باشه پدر بله من و فردا میخواییم بریم شکار شکار؟ بله کجا؟ میخواییم بریم حوال یه که تو دل جنگله تعریف اون برکه رو خیلی شنیدم شنیدم هیوانای زیادی به اون برکه میرم درسته؟ جای خیلی قشنگیه تو دل جنگله تس شما موافق که برم اونجا ها؟ برو اما خیلی مراقب باش <تصفح> چون حیوانات درنده زیادی داره خیالتون راحت ر <تصفح> روز بعد فریدون همراه حاطف به جنگل رفت و راه برکه رو پیش گرفت وقتی به برکه رسیدن از دیدن اون همه زیبایی مپود شدند. طولی نکشید که سه کبوتر پرواز اومدن و خودشونو به برکه رسوندن کبوترا وارد برکه شدند و وقتی که از برکه بیرون اومدن به صورت سه دختر ظاهر شدند. فریدون با دیدن دختری که از همه کچکتر بود دل بسته او شد و نزدیک رفت تا با اون حرف بزنه من خواب میمیرم بیا بیدارم ش... شما کی هستی؟ اسمم فریدون هست. تو کی هستی؟ اسم من م... اسم من زرگیسوه زرگیسو؟ که اسم من تا حالا تو رو این اطراف ندیدم منم تو رو ندیدم من و دارم هم همیشه برای آفتانی به این برکه مید. اما هیچ وقت تو رو ندیدم. درسته شون اولین باره که من به این برکه اومدم ولی من فقط دیدم که ستای کبوتر برای این برکه شد حکایتش طولانیه فرم دلم میخواد حکایتش رو بشنبام فرصتی نیست ما باید به برکه برگردیم و کبوتر بشیم و به منزل بریم اون دو نفر کیه هم؟ اون د کنیزای منم بب ببینم من من من میتونم بزنم تو رو ببینم نه نمیتونی ولی من دلم میخواد باهات ازدواج کنم بهت میدم خوشبختت کنم باور کن من نمیتونم به اینا برای ازدواجم تصمیم بگیرم منظورت چیه منظورم اینه که تو باید فکر ازدواج با منو از سرت بیرون کنی برای چی برای اینکه منو کنیزام در قریه عقاب زندگی میکنیم قریه عقاب اینی این این ای این ای که الان گفتی کجاست بالایونکو هیچ آدمی زاده ای تا به حال جرأت نکرده وارد قلعه عقاب بشه. اون قلعه چه قلعه اون قلعه نه در داره نه دروازه. اقاب بزرگی روی قلعه زندگی میکنه که منو و کنیزامو تلسم کرده. تا وقتی که اون عقاب زنده است، حال روز ما هم همین. چطوری میشه وارد اون قلعه گفتم که تا به حال هیچ آدمی زاده ای نتونسته وارد اون قلعه بشه. سر راه اون قلعه یه رودخونه هست که آبش تلخ شده. فقط کسی میتونه وارد اون قلع بشه که بتونه از اون رودخونه رد بشه و خودش را به اون سمت رودخونه برسونه اگه کسی بتونه از رودخونه رد بشه چی؟ اگه از رودخونه رد شد و تونه بکشه میتونه تلس منو من و, و بشکنه و ما رو از دست اقاب نجات بده در غیر این صورت خودشم کشته میشه اون برای چی کرد؟ برای شده بود بعدم با جادو پدرمو که پادشاه بود به سیاه چال انداخت و منو کنیزامو تلس کرد. والا اگه برناگری به قلعه اقاب چی میشه بیا بابا من به قصر پدرم بریم ها؟ من همورای پدرم از تو مراقبت میکنن نه نه فریدون اگه یک شب بیرون از قلعه باشم اقاب مأموراشو به دنبالم میفرسه و هر کجای این زمین که باشم منو پیدا میکنه و خون منو میریزه این این حرف هر روزه اقابه بعد از منم سراغ پدرم میره و پدرممو میکشه همه ای اینا به این دلیلی که حاضر نیستم با اون عقابه ازدواج کنم حالا مگه اجازه بدی منو کنیزان باید وارد برکه بشیم و به صورت کبوتر در بیاییم و به قله اقاب برگردیم من, من دلم میخواد بازم تو رو ببینم نمیشه نمیشه فریدی اگه به فکر هستی سعی نکن منو پیدا کنی همین الان منو فراموش کن و به قصر برگرد خدا نگهتا سب سب کن. زرگیسو همراه دوکنیزش وارد برکه شد و به شکل کبوتر در اومدن و راهی قلعه عقاب شدن حالا فریدون مونده بود و یه دل عاشق که برای دیدن دوباره زرگیسو آروم و قرار نداشت فریدون به قصر برگشت و موضوع برای پدر و مادرش تعریف کرد این تموم ماجرهی بود که بر من اتفاق افتاد ولی،, ولی اون دختر تلسم شده است؟ تو نمیتونی برای اون دختر کاری کنید چرا میخواین منو معیوز کنیم پدر موضوعی نیست پسرم رفتم به اون قلعه خطرناکه خودت گفتی زرگیسو گفته همه اون قل در تلسم درست ما مادر اما من این قدرت رو دارم که با اون اوقا به جنگم و تلسم زرگیسی رو بشکنم رفتن به اون قل ساده نیست فریدون اگر بود حتما تا آل کسانی تونسته بودن اون قلعه بشن و زرگیسو و, و کمیزانشو نجات بدن آه. پدرت راست میگه فریدون اگه زرگیسو دختر پادشاهه حتما تا حالا معمورای پادشاه میتونستن اون نجات بدن شک نکن که این کار از احده هر کسی ساخته نیست پسرم من هر کسی نیستم مادر من فریدونم پسر شما من از بچگی تیر اندازه شنا، اسب سواری شکار یاد گرفتم تو همه این سرزمین هیچ کس نمیتونه اونجوری که من نشونه گیری میکنم نشونه گیری کنه و به هدف بزنه. نبرد با اون اقاب فقط به مهارت تیراندازی نیاز نداره پسرم. درسته. باید همه جوره توانایی مبارزه من... با اونو داشته باشی. ندارم که این قدرت دارم. من میتونم اون اقابو شکست بدم. من سالها تلاش کردم ورزیده بشم، بتونم یه مرد قوی و برومند بشم پدر. شما فقط باید به من اعتماد کنی. موضوع فقط اعتماد نیست پسرم. منو پدرت میدونیم که تو چقدر قوی هستی اما اما اقاب یه قلعه رو تسخیر کرده یه رودخونه رو تلسف کرده زرگیسو رو همراه با پدرش و کنیزاش تلسف کرده چنین آغاب قدرت زیادی داره فرید من از اون نمی نمیترسم شاید من این قدرت از عشقم به زرگیسو دارم شک ندارم که با تکیه به همین قدرت میتونم تونم شکست بدم خواهش می کنم پدر بهم اجازه بدیم به اون قلعه برم خواهش میکنم نمیدونم چی بگم فریدون بگین اجازه میدین که برم قلعه اوقا نظر مادرت مهمه خواهش بکنم مادر بابر کنیم میتونم شکستش بدم من که شما همیشه از ما نمیخواستین ازدواج کنم خب به این فرصت بدین برم اونیو که دوست دارم نجات بدم و باهاش ازدواج کنم ولی پسرم میدونی کنم مادر خواهش بکنم آه. باش اگه فکر میکنی از احد <تصفيق> شما چ میگین پدر باشه برو به خدا می سپ پس تو ممن ممنون نه فردای اون روز فریدون همراه دوستش حاطف راه قلعه و پیش گرفت اونا چند شب و چند روز رفتن و رفتن تا به رودخانه خروشان رسیدن که موجهای بزرگی داشت فریدون و حاطف به سختی تونستن از رودخونه رد بشن و به نزدیکی های قلعه برسن اما... اما همین که خواستن جلوتر برن پاهای اسباشون به زمین جزبید و نتونستن جلوتر برن حرکت کن هیفون حرکت کن اسبا نمیتونن حرکت کنن فریدون مگه نمیبینی پاهاشون به زمین جزبیده نسی برای چی باید این اتفاق بیافته معلومه برای اینکه منطقه تلسم شده است هیچ چیزش طبیعی نیست من نمیدونم بعد تفرده هر شده اوقا خودمون بقل اعو اونجا رو ببینده کجا رو؟ ناک قله نقاب لحنتی رو ناک قله نشسته داره به من نگاه میکنه میتونی ببینیش؟ آره آره میبینمش فاید بزنمش آتف چی داره میگی فرگ دو نگه نتونی بزنیش همینجا هر دومون تلس من گفتم باید بزنمش گفتم که نمیزنمش ولی ولی تو از اینجا چطوری میتونی بزنیش؟ به تیر اندازه من شک داری وقتی تیر رو رها یعنی قلب. یا ما اوه ما خیلی دوره واقعا منو به اگه به هدف نخورچی اگه عقابو نزنی من برای هر اتفاقی اومادم اما مطمئنم میتونم اون عقابو بزنم ولی اگه به هر دلیلی این اتفاقی افتاد تو خیلی زود از افت پیاده شو از راهی که اومدیم برگردی تو چی من فقط تو یک حالت از این منطقه بیرونو همین اینه که سرگیسورم با خودم ببرم اشتباه نکن فریدون این کار عقلانه نیست یاش هیچ وقت نتونست عقلانه کار کنه حالم میزار خوب حواسمو جمع کنم این چی رو به قلب آقاب کنم خوب دقت کن فریدون اگه آقابو بزنی نیمی از ماشکلاتمون از سر راه برداشته میشه 朝前朝前朝前 فریدون اقاب و کشت اما بلافاصله فاصله بعد از این اتفاق رد و برق شدیدی در آسمان در گرفت و بعد هم همه جا تاریک شد و مدتی بعد قلعه فرو ریخت صدای فرو ریختن قلعه چنان هولناک بود که فریدون هم از حال رفت و روی زمین افتاد فریدون فریدون چشماتو باز کن فریدون تو رو خدا چشماتو باز کن ببینی جا چه خبره فریدون نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه. تو میتونی تو قوی هستی فریدون فقط یه ضعف کردی چشماتو باز کن و ببین چی کار کردی ببین قدرت تیره چه بلایی سر قلع آورد آه... کجاست؟ اول باید چشماتو باز کنی تا بتونی همه چیزو خوب ببینی بزار کمکت کنم تا بتونی بشینی و همه چیزو ببینی آه... آه... چشمتو باز کن فریدون آه آفرین آفرین چشمتو باز کن اینجا چه خبرات؟ آتف میبینی که به محضه اینکه که به قلب اقاب زدی اقاب افتاد و مرد بعدم همه جا تاریک شد و قلعه ویران شد چیداریمی که آتف یعنی دیگه از قلعه اقاب خبری نه فریدون ببین قلعه با خاکی اکسان شده قدرت تیر تو این کار کرد ولی چطوری من فقط قلب اقاب نشونه گرفتم تو تیرانداز ماهری هستی قلب اقاب یعنی ویرانی قلعه اون همه تلاش برای تیراندازی امروز نتیجه داد و تیرت به هدف خورد یادته همیشه میگفتی تلاش یه روزی نتیجه میده اینم نتیجهش ویران کردن قلب و شکستن تلسم زرگیسو و کنیزا و پدرش از زرگیسو داری؟ نه وقتی از سوش رفتی نگران شدم نمیخواستم تو رو تنها بذارم و به قلعه برم درزه این تویی که باید به عنوان اولین نفر وارد قلعه بشی و زرگیسو رو آزاد کنی پدرش به نظرم پدرش تو سیاحچال این قلعه زندانی بوده باید بعد از آزاد کردن زرگیسو بری به سیاحچال و پدر زرگیسو رو آزاد کن تمام تنم درد بیدونم نیدونم بعد جوری زمین خوردی ولی نگران نباش من کمکت میکنم تا بتونی بلند شی و وارد قلعه شی دا... تو... تو مطمئنی الان زرگی سو تو قلعه بله دل... اون دل... الان تو قلعه منتظرته سرتو بالا بگیر فریدون آ... تو الان قهرمان قلعه اقابی تو تنها کسی هستی که تونستی اقابا شکست بدی و وارد این قلعه بشی علی من بدون تو نمیتونستم این کار بکنم من دل... هیچ کاری نکردم دیر تو باعث مرگ و فیرانی قلعه شد افتخار این پیروزی شایسته تو فریدون شایسته تو وارد قلعه شد و به طرف زرگیسو رفت تلسم زرگیسو و کنیزانش شکسته شده بود و اونا به شکل انسان در اومدن بعد هم فریدون به کمک زرگیسو به سیاه چال رفت و پدر زرگیسو رو نجات داد و همگی به طرف قصر به راه افتادند چند روز بعد هم مراسم ازدواج زرگیسو و فریدون در قصر برگزار شد و آنها تونستند زندگی خوبی رو در کنار هم شروع کنند بله دوستان این هم از افسانه زرگیسو که افسانه ایرانی ایرانیه و از کتاب افسانه های ایرانی نوشته محمد قاسمزاده اقتباس شده این افسانه هم در دل خودش درس مهمی داشت اینکه هیچ وقت تلاش و کوشش بینتیجه و بی باقی نمی مونه. امیدواریم از شنیدن این افسانه زیبا لذت برده باشیم افسانه زرگیسو تنظیم برای رادیو سهیلا خدادادی راوی محروخ افسری، بازیگران به ترتیب اجرای نقش علی دریایی احمد گنجی میر مزلومی، مظلومی ایوب آقاخانی. مینو جبارزاده ناهید مسلمی، امیر زنددلان کارگردان بهرام سروری نجات افکتور محمد رضا قبادی فر صدا حیدر صفدری یکننده زهرا عبدالله زاده افسانه ها رنگی از زندگی اند افسانه زندگی تو دلنشین و مانا تا افسانه دیگر بترود